پرسیدن که سرزنش مومن یعنی چی؟ و سرزنش با تذکر دادن چه فرمون؟ همون چیزهایی که خودمون بدیمون میاد کسی پشت سرمون بگه دیوها در مورد اون جلوه رو اونم بگن ولی وقت مثلا انسان تذکر میده بگه که در خفا در زمان مثلا مناسب اون تحقیر و تأخیر نیست ولی گاهید پوزخم میزنه انسان تیکی میگه خودش به دیگران میخندن معلومه قصدش قصد نخالصی هست و نیت خالص نیست برای رشد طرف گفتن اگر یک کار کردیم یعنی خب مومنی رو سرزنش کردیم چه باید بکنیم که مبتلای به آثار اون گناه نشه؟ دیکی از کارهای بسیار موثر نیست که این کار رو سرزنش رو هیچ وقت تکرار نکنیم ان الحسنات ابن السيئات خود کارهای خوب رو انجام بده انسان کارهای بد رو از بین میبره یعنی خود توبه ای که انجام بده اون... بله توبه و عمل مخالفه کار بد